كتب باشترين هاوري خمد نوي كتبو قران بانيو حكمتاكاني نوسيندا كتبي چشدي مجاور نوسيني هجار مكرياني خمد نوي عميد علي مارکردنی دلیر سلیم گویرانی خوشاویس استلاوتنلی به خوشحالین لبشی هفتاد و دو خوین نویکتی بی چشت میجوری حجاری مکرانی هاتینه ولاتن فرمون لگالمانبن حجاری مکریانی ل یارانوی به سرحت جیانی خوی بر دوام بهو بو منده 18 مانگی 13 سال 1963 سلام عرف که سرکوماری کومری په بو ل باسیکان هلق را دم لپوشی کړن او دما له هیران بو ل پاش پنځه روز د گل میران بلور د بده خمنګیند الدولار رکو بو نیمیوانی هبا هباس رئیس رئیسی اشیرتی گوریو پتر لا پنجا گوند ملکی هبو. سر رای اوش بولی و بابولی که للای قندیل گرمن کیستان دکنو یک جار زورند دبر حکمی دابون هر لا شاری رانیوه تا گلالا رأیتو آغا خوین سربا با هباس دزانی. نیمچه پادشایگ بو. هوالین آغای که بوبوا یاریکاری شورش او بو. بلام هیچ خوی قوار دماغی اغیانه نبو، زوری حزل گلتاو پیکنین بو، حتا بل روحسوکو خوینشیرین، زلامی که زور بلند، بالای جوانچاک، سخی اگ بو که باوکی حاتمی تیده بو وردکه مالی او بچنیتاوا، زوری میوان بو، قد نمدی لسط میوانی کمتر هبه، روژیوه هبو پتر لدو 200 میوان لسط سفری او کوده بو نوا، نخویندواری کی یک جار زیرکو سیاسی بو، ومن الرئيسة الذين کمی لديه حزب الشعي و البرئة قلع حزبتر هموه بونو تعریف تعريفية اندكرد بشانوري ملا مصطفى لا دولار رقم مينوه ملا ملان پتوه توكن تركيا بديره دايا هبازاغا هر لا مجلسه بيه كاك هجار اول بيه تو نقول من ناموه نقول اخ لداخ تو وزقم داوا همو کس حتى ما مستقره ركن شتم لدخوازن من لا قوية پیچد ددامه نتوه رادیو دیون پیشکش کردی نتویست پتوی میرانت ناوه وادیار توال دل دا شویه کی زور غلیزی دلی مالی فو آدال گلاوه وزیری قاسم حمز عبدالله کونسروکی پارتی حمید عثمانی رئیس پیشوی حزب شویه میوانی بونو ما ویگ بود دین کتابو روژگ اونی وطی که که بس بلی کراس یکم بو بینم اویش وطی اوني كوتو جليقي داكن كراسيكي شرعي چلكني نشاني مجلز دا پيوت كاك اوني خانيو يكت لهولير هيا پينج هزار دينارت عدمي بم دايا اونيو تبوي هرچان دولت دا يجي کردوا بلان بده هزاري شنادم هباس آغا پيوتبو ماي نكت هيا پين ست دينارت عدمي بم دايا اونيو تبوي هاي بخواع مشتري هزار ديناري هيا هباس آغا پيوتبو بولا سپیندارد لگلالهان بچوار هزار دینار لید نقد نغدو تو دینالی که لیب دا بکراز او نیو تبوی؟ قصه هیچ سپیندارکانم باید دوازده هزار دینارن پیو تبو؟ جاو جار مستحقی هرون دو کراسی لبو بینن گلوساجگری جمهوری لپیش بو بشی میوانانی لیده همزه دوای کرد پاکتی بودریش کرد همزه دستی بو برد دستی دکی شاو پی, پی دکنی. تاویگ مشکو پشیلی پیکرد او سادایه سرمبرده بنگوی هندی قسم چپان بگویده زور پیکنی زور دگل من گرمی گرتبو پیکوه دا چوین راوی شوانه میوانی هر گوندگ دبوین لمزگو دنستین دگل رایتان وگ برا چوکا دا جولاو ددوا روژیگ بدوی کروشکا اصبمان تاو دابو اصباقی من که اویش ای هباسا غابو ویستی لکندالک بازدا. برو هاتو بر اوپکو خومهل داشتا قراغ کندو جود پی چاقیم هباس آغا پی سیر بو ده من توان بشارستانی خاویل کده ناسی کنای ویری سواری بی بلا هم هرچی بیرد لیده کموا و در چه شوک لگونده که پشترانیه بوین چوار آغای پشترانیه یکیان جامیر آغای نو بو هات نو کارین با هباس آغا بو شوکر راک شا بوین هباس آغا لخوی هستند موتی حمید اثمانیشی راس کرده و نردی چوار مریشکان ببرجینن قصی قورمان من و دحیل که نوا پش داری که با قلانگیش گویان نگات دم بطوری سریان حالینا بزنن کم بیاشر ما خویلی تک داون که هباس آغای خویان ماد کرده و وتم هباس آغا استال بر خویانو آلین هباسی مامند آغای سکباب برافیقیاتی سروتی حزی شارستانی پیواتی خویل دست داوا این مشکه کرمند که توت او هم آب رو منده چه هم لوانش او شلاتیه بمان من پیگ نهینی پیره ارمنیه کی فقیر لسابلاغ کاس پیکی رجی دابیشتن بو و تیان تلیش مسلمان با پولت با کوده که نوا خانوت بوده کرین جنت بودینین شاد شادو ایمانی هینا سننتیان کرد بلام جنو مالو خانونه بو تلیش زور با کل لسوچی چی دوکانکه و دگریه و دیگود کی رکشم چو دینکشم چو هباس آغا که زور پیکنی وتی دا جا شرط تکارکش بو نکم تا تاو ببن تلیش شو بو دستوار بوین کابره یک لکوخ یکاو کتنیا مالی لچول بو حرائی کرد هباس آغا دا بزا قاور هایا دا بزین قاورمه کابره من خلاص کرد لره وطم اخره و بست زمان قاورمه سالی لکیست چو ندبوهای لاده وتی نا نا بسری تو لم نده بادلی دیشا چند روزیک دویاو و لدولا راقه بو رقبو، آغاو تی فلان تو او سال چل تو کد لیا نکریو دیاره دستت قچاندو کابره پیوت بو آغا گیان جاره پارم بوها نسو راو لکه آغا زکشتی که نو کریکی نوسی بوی شازده تنک برنجی بدنیاو روزیک که گیو روژیک لدولا راقه مرانیا شول مالی مام قادر با غوان بو. سبای ویستم با پیه بچ مو دولار رقا چه مدانکم مام قادر و تی بازاری دفروشان همو خلکی دولار رقن چه مدانکت بو برنوا خود با پیه برو چون ممیدانکر لکابره یکم پرسی که که خلکی دولار رقنید و تی نه و تم ادی کسی دولار رقی نه نسی و ناسم بلام کس امرو نه گرامو بانجی کردم و تی اری کاکا که خلکی دولار رقت بو چیه وتم جا کلی رنین هیت و توی آخر بلی وتم جانتها کنبو برنوا و خنجرت پیا وتم بوه پی وتم دور یه راک خونی لاده کره هشت روزه لذ ولا کی چاد بودادنی کی جد ورادخا کی آورد بودین کی را بر نام ناسیا و منش پیامد عایب باخش چونی چهی و توی دیناوم وتم ها چی ببخشه دارایی بود نکم، بس در سرمانه که و توی برایم وتم آی کج برایم یه پی وتم برایم ناو قزل قرد دت به اس ترد بد میاد دت و چمدانم داره و دکل جعفری کرد منافی کریمی سابلاگی کزلامه کی به ای کلبو بپی برود دو لارقتشون شوده هد وتم بابچی نپلنجان و توی آخر سج هیو مل سج ترسم وتم کاکا من سعد لی درکم کمال لسجان خلاص کردو شونه مالی ملا عثمان خیر ریم ریش کم بیست و تم هرچیه تنه آوا دخوینون نمیشد ریش سربران دوقلی وی کشکانی سربرانیان دجال هیال کورون هنر و جعفر تو کامن هلگری من دوقلی و ناخوم نزدیک هشده سال بو دوقلی وی کشک من خورد بو آوا ندم خورد شو خوم لی شویگ دګلملا باقی او احمد توفیق لاس پیاوې بوین کګونډی کی چکولې له الدولار رقه مللا باقی هر شوی زور مابوت شایلینه خان خویکه من کو خرسو شیتو کیګ بو متي مللا باقی او شید خویا وا او شوتی ها چن فزولی در معنی زګ او ډاکتور بوینوسی او او شوتی د بخوا من زګ یشم لو منشتهکه مللا باقی اوتی زور بیا سلیقی درمانی نخوش یک با یکی تر نبی اویش وطی بخودا دبی بام تیکی احمد وتی ملا باقی گیشتو یا گون رشی خود کیخا دوانی خوارده و هرده گوت دلی چای خو مانا پین ست چک داریک دگل بارزانی بو رو جانش میوان بودیتنی بارزانی ندپساوا گوشتو پلاو نوی نیه باساگا بنی ندهاتو قط نمدی روی گرر به. زور ماینو ما لوی رانی هاتین ملا مصطفى مدرسه سنگسری کرده بنکی که خوی و تیان خلقی هم گوند زور برسین بایان کوتینا گنم کو کردن و زور زو لبرسیاتی رزگار کردن لبغدا و پیوی دولت حاجی عبدالرزاق نوی که استنداری موسل هاتنا رانی باو تویش کردن سرطای گفتو گو دامزراو دریجه کشاو حزبیش لو تویش دا باش در بونو لانجام دا گرین بریاری اگل بسو دولت قولی زورشتی دا جگل خود مختاری بایان یک له هر دوله بلاو کرای و بریار درا برزانی و سرانی شورش کوب نو و بریار بدن کبچن بغداو حقیقوان دوا کنو بی خیلی سرقاقزو مور کرد من کمامستا حزبی نبومو لوتویج سیاسی دا بشم نه زنم دریج قسکان چون بوند دوگمان دیکی خیال کیان بو که هر لپای زاو آمدن لبه ها چوال دکره مالکانی هموی زور زلامو باوش که بر دندرا و وقیه داشن دگل می رنی صلاح بگو چن برادرک لمالیان دامزد رن بیانی که لمال دارشون بو اول گران و دا لیم یم تجنا چه قیتا یه کم لسربانی کردن نشانه شودران کویست من لکن برزنی هستین میران و پیش مرگ کنم دیوان مالکا منشوتم ب قزاب من د د قلم شارزم روشتين نشانه ندیتو سرم به حسار د کړدول درګی جوړه ونده وتیان امه هیڅ میوان من نید آخر اخر ادی مام نم نبی لکوی وتیان مام نبی لمته نيه میران تو ربوبو دی ګوت اپرود بردم من شپه موت میران په ټریقه کس نه دی توی دنګ شت نه کړ تا بتناسنو لرواژنامه بنوسم رګایلی چوبو دسن ګراین رونه کیکم لم لم ګوزې کو دیت کده دیور غیرابو روانیم حواله کړم منبون بخاون مالکم ود اری من نشانم کړدی بو بو نما بو ایوشوتی کاکا نشانه چی بیانیم من بوم فننجیم د خو مو پیچابو سېل حیوانانه ذکر باشه دی ارم مال مام نبینیا همو لا قاقې پیکنین ننده وتی او کر یک مانگیله مان نوی نبیه چون ته نه ای مطلب بیر و او من دالا گچ کو کتل ماوه منیش بتم کا کجان زیره کی کم سر دکا اوی خلقی گوندو گارانو خوشمال میوانکان گوموک لبرانی دا او بو کلا کا کری کی توپیون شیت دابو شریکل لا گردباخ کو بو بو نوا ملن مصطفی قسیکردو زور بگش حزبی حزب پارٹی کس لما مصطفی قسای نکرد لخوم و خومتی خست کل و مجلس سردارشون سلیم فخری که افسری که رتبه سروان عربو دغلا شورش کوتبو کردیش زور باش فربو بو پیمان داد ود که همه و تی با شرفم پی آی وقت ولحک و تن آزادترم ندی وا آو آنکسیا نیا نیرو دفاعی بکن ادیلو ما ویداز زورتری وقت ملاقات زرادبود دغلا مستفاو کوآ بو بمهاو منزل خوان منزل کنایی احمد هرمیبو و من هاتما كومالي سابلاغو بوما پيش مرگو لسر باسخانه دجيام. روجه وطيان نيرو یعنی لشکري ايران و بياني كوا خبرهاتم ديتم سابلاغي غن همو يان لهم چوبو نسر رشي هوالي. هر امن قط لو نيودا ما بو. بخوا منيش ناشر حلاتمو هات وا عراق. احمد توفيقو فاياق معينيو جماعاتيان لمنظله كي دي کبونو هميشه هاتو چومان هبو. زور جاریش سریم لبونکی ماموستیانی مکتبی سیاسی داد. عبدالله علی کبابسم کردو یه خیل دوستیاتیم داد دادری. قلیل یکردم که بونا ناچم مسیری مالی نادم. وتم کاکا علا. کرد دلی نن اگر لذبو یک نقری توه. روز یک دگل ملا شکر مستافا بریده بر وحولیار دهاتین. ده وتی توی عبدالله کانی مرانی دلیه حجار زور بیافی. وتم کاکا تو خندهواری. تو خوابیم باله وفات یا مدبو وتی ابروی خوش میتی د چه تو او هم چاکت د کرد مولبیرم نما میرزا ابراهیم چوشینی سابلاغی به شو حکایتی اسکندر نامی لقاو خانه دوت بر روز اعلانات حزبی بدنگ بو خلق د خوندوا لا و او هم ایرانیان زور دور پرزب بو یک رحمان شتی جلیل کلاباب کاو شریکونی میرزا ابراهیم بو د چه سلاوی لیکو اغا میرزا تو خواشی ویستی پیش شوابوی شون خبر داد که حزب بتكات زور نه آنج دلی بر رو سکب نه به هیچ سابلاگیک بلامو به شوید چند دکل سابلاگیکان چوبن قواخانی سید نسیم کجیه لحیکیت بگیرن میرزا برایم که اسكندري لقلاگ داد بگرتن دواد دوای چای کردو نفسهک بده لذیت نی او سابلاگی نشد دلی خورته پس چای کدالی جا اگر حضرتی اسكندريانگا خلق بيدكنن او يجدلي تاو هتي وانا بوتان ناليم خوشتویستان لیر دو بمشی ویا حتی نکوتایی بشی هفته و دوی خوند نویی کتبی چشتیم کوریانی تا بشی کتر اواتی شادی و بختواری بو هم لایکتان دخوازین